والله من اشياء بسم الله الرحمن لله رب الله و و اللهم جميع وارحمنا که مثلاش رو در جلسات گذشته نمودم بودشت سب و, و که آیا سب و لعم یکی هم یا دوتا البته از انصافش ما باشیم و الان سرم اوزید که ما یکی میگیریم من بیده انشتر میشون من خوف میدیم لیکن انصافا تحویل محضر اینطور نیست که این دوتا یکی باشه. این دوتا با هم فرق. راچی به سرمی روز مجموعه کلماتی رو خوندیم بر تا که معلوم شد همونطور که از کلمات بیروز از ابن خارس کنگی و که از که از اون در مجموعش معنای به حساب معنای آر و ننگی و اینها خوابیده لینه من کلامی که ما با اون آیون بحث داشتیم اون عبارت این بود که آیا این خودشکه اصل به رأس است یا از همون قدعه در این کتابه لقط قالبه از گرفتن احتمالش هم هست نیم خانم هست با انتقاض هایی که داریم و با توادرهایی حس می کنیم اصل دیگری باشیم بسید که لطف سبب هم اصل سومی می باشیم احساس ما اینه که سبب با این یکی ربقی نداشته باشه اگه اصل برسته باشیم راجع به کلمه لعن هم یه نوزی کتاب دیگری ایسته جوهری رو به اصطلاح که این واقعا کتاب بسیار نافید و خیلی زحمت کشیده. مرگ مطلعی هم هست به اصطلاح بو نسل جوهری به نظر این شهر فاراب الان در ترکمنستان نیست؟ ترکمنستان نه برد ساجیستان چیدی؟ بلا فاراب بلا هرمانستان که این طرفه هست؟ این طرفه به نام به اصطلاح در سابر تورکان نشین گفتند در اصطلاح حساب شاهنامه به اصطلاح ترکان نه النهر نهر تیمونجوی بود در مقابل ترکان آذربایجان این طرف آذری ها ترکان اون طرف ماوراء او نه که اینها هم مردمان بسیار با فکر و ای دارند این تقسیم دوازده ماه حال همین یعنی علمای ترک سال رو به دوازده, دوازده سال پشت سره هم به چخان ایل و مشکل این تخصیم کردن این مراد علماءی طور که اون طرف هم که خیلی هم در این های نجوم و این ها کار دیار کنه خود این جوهری هم مرد انصاف خیلی مولاییست مار فارابه. فاراب، فاریاب نه فارا، مار اون طرفه که واقعا مرد فهمیده ای این هم از اون است که دوتا در رو برداش بود. در باره مسجد جامعه با بال درسته میخواهم پرواز شدن. یک تنابی و تشکیلاتی میخواست پرواز سنن از مرد میشه مرگش هم هم پروازش هم که ما این کتاب سهارش انصافا بسیار کتاب نافعیست از مولاییست مرد فرکاریه و پیش بزرگان جغفت هم درست و خودش هم و انصافا جز اعمه شدند. من برای اینکه یک مقداری بسیار تغییره فضا بشه و همون کتاب ابن فارس هم خیلی نشد اصلون لام و این ونه هم اصلون برده داره اصلی که که رعنه تربه اصلا خود کلمه لام و این و رعنه ترب ایشون هم نویشت ها من از کتاب ایشون گفتن بخونن کتاب نسیده هم مسئله مثال، خوبی داشت اصلا این کتاب سه ها معاصل با ابن فارس هست ایش هم همون دو چار سر دفاتش سر. هر دوشون قبل از این چار ایشون میگه الان از تردو ولی امعادو من الخیل این تن به استعداد تر بخونه و در کتاب ابن سیده نگاه کردن هم در مرحبه در خیلی میکیشه وقتی کارانی شواهد زیادی آورده انصافا شواهدش بیشتر از اینه از این کتاب این مختصر تره. اون بیشتر آورده و کاملا راسته یعنی انصافا یه من فقط اجمالا عرض نخم من برای اینکه که نحری کار لغتی لغتی برای شما ها روشن بشه این از هر... چون من کردم ما در مباحث لغتی که به اصطلاح آیون مدالیل تصوری هستن و افرادی هستن در اونها هم قائل به تحلیل فرم نیکنه این طور که در مدالیل جمله قائل به تحلیل تصدیقی قائل به تحلیل باشید مدالیل افرادی یا مدالیل تصوری هم قائل به تحلیل یعنی میشه. اون معنا رو دقیق بکنی تحلیل بکنی و بگیم مثلا اصلش روی این جهاز بوده این خوب تعبیریه. اگر کسی و از یک خیل ترد و ابعاد من خیل یعنی ایجاد فاصله بکنن بین یک شخص و بین خیلی از بهش دیرون شهرم این میان ملعون مثلا لعین طوره مثل شیطان مثلا و لعنتو علیه از اسمه چه استعمال میکنه اسم مصدره سابقا هم توضیحاتی دادیم م... که دیگه اون زمان ها این زمان اسم مصدر جا استادون حالا مراد دقیقشون از اسم مصدر چیون بحث دیگریه و جعل لان و لحنات لعنه و لحنات مثل تجلیل و تجداد خب در اینجور جنها حرف وسط عین الفعل به صورت حیف پیدا میکنه حرکت و رجل لعینون و ملعون و المرءتو ایزن میگن اگر تعی معنی محبول باشه به مز مع است مثل تعطیری معنی محصول مثل طریق معنی محوب اینجا منتون هم لكن ایشون اینجا اینجور گفته جل در و مرد و مجل مر مر در این لکن در کتاب سیجو وره که اگر با موصوف بیاد معص میشه بدون اون اینطوره اون دبیع سر که از اون در داه مثلا گفتن ها به امره لعینه اگر امره رو بیارن لعینه اما اگر گفتن مثلا جا از ویه رحیه لعین اگر به من غص نباشه برای زن هم لعین به کار برده میشه چون من اون این کلام ابن سیده به نظام از این دردش کرد و لعین الممسوخ اون که میگن مثلا ادری مست شده به بوزین و اینها اون هم لعینه چون ترد شدی از انسانیت خارج شده درست و رجل و لنی. این اصطلاح رو ایشون داره در کتاب ابن سیدم آمده اینم یکی از موارد احتمالا یک نوع مثلا چید شده باشه موارد به اصطلاح یکی نوع مجازی که هفظ ریشه درش شده آقایمی که در مستاها در باقها در زمین های ششهایی دارن یه حیفل آدم درست میکنن که حیوانا نزدیک نشن پرندگاه که ما به شون این مترسر مترسر که معروف اینه دیگه این شون بگه ورد جلال لعیم شی اونیون سبو وسط المزاره توسترد ردو یا و به هلوهوش راسته اینم بهش چون ترگ داره چون توی دور کردن داره در اینقدر لعیم یعنی کسی که میشه با بیشتر جای لعیم هنه فعیل هنه فائله نه من, من بیشتر کسی که ایجاد دوری میکنه. هر ما مترسنگ میگیم در لغت فارسی، در لغت عربی اون لعین میگن اون کسی که وسط مزاره میستن بلیش شعری هم نرکده که آقای مراجعه کنم دیگیم خیلی بحثی لغویشه اونقدر چولانی بگیم در مجموعش انصافا اون بحث ترد مطرحه بعد ملعنه باره و تریه ملعنه وسط را تو کنار دیوارها ها که لذا داره تقل ملائنه ملائئ یعنی به اصطلاح جاهایی که یعنی که اگر انسان مثلا مثلا حاجز به خدا کرد مردم رو لعن میکنن بارعث طریق و منزل و فل حدیث ظاهرا اینجا استعمال رو گفتن اما نکته رو نگفتن انصافن راسته ملائئ کو ملائئ به معنای همین را چون اگر انسان در اونجا مثلا به نسبت کصفتی ایجاد کرد افرادی که رد میشن لعن میکنن شخص رو این م به این معنی بود تو اینجا جایی که فرم مورد لعن قرار میگیره معنی تگ نیست سوش افتا که اینجا مین تو آلودگی پیدا کرده و ما که شب بودی واقعا یکطور روز که شبایی در زیاد بود واقعا بدون مشاال صبح ها واقعا رارفن را کوچ خیلی بود خیلی وحشت بودیم چجوری بودیم خیلی داشتن. این این درسته، اما این نه من آن را یک هرده، که مردم فراد میشن این افراد رو لعنت میکنند. بعد ورزشان رو لعنت، این میخواد اینو بگه این شیبی مزمن هم ازه، فریلن و کلی هم ازه، دوم ازه، داوران هست که هم زولعنت، هم و دوم ازه که سیری مبالغه، این در ماده لعنت هم آمده، کسی که مردم روزی آن لعنت میکنند، مردم رو لعنت میکنند، لعنت میگه. میکن. از کل اینا هدفشون اینه که میخواد بگن از این ماده این اشتقاق آمده یا نه مثل از ماده لحنه فعاله به معنای اسم و بارگه سیغه به کار برده شده یا نه از طور همزه داریم همزه و لومزه لحنه هم داریم و دیروز اگه یادونگاهشون باشه اونا میگن در سلبم داریم که کسی کسی و سلبه در سلبه این دوتا ماده دوشون فعاله دارن سببه کسی که مردم رو لعنه بکنه از لعنه هم داریم هم لعنه داریم که ایشون دیگه شعرش ذکر نکرده شعرم در کتاب میخوام آمده ما یک لعنه داریم یک لعنه داریم فعله و فعله فعله دو سیاقه مبالغه است که در موارد خاصی آمده مثل حامزه و لعنه و لعنه هم, هم هست خیلی دیگه هم موارد دیگر داریم فعله به معنای تقریبا اسم مفعوله به معنای ملعون کسی که یل هنه هن ناست لعنه من یل ناس لعنه لعنه من یل اون کسی که مردم رو زیاد لعن میکنه به او لعنه میگن کسی که مردم رو زیاد لعن میکنن به او لعنه میگن کار لعنه ت یعنی کسی که مردم یه مثلا که مشیرف تو این فامیل این شخص رو لعن میکردن و لعنه به تسکیم این کلمه به تسکین خوب دقت بکنید یعنی به سکون شما ممکن یه وقفه سکون کدون حرف چون حرف اول که وا حرکت داشته باشه حرف آخیرام که حرف اعراب وقتی میگن به تسکین حرف اسردگیه تسکین یعنی به سکون وسط به سکون این الفعل وقتی گفتن به تسکین یعنی به سکون و لزوما گفتن به تحریک این تحریک اینولفه. این الفعل این اصطلاحشونه اولی چون متحرکه آخری هم که حرف پس یک گفتن تسکیم میخوره حرف وسط این در دو لوقت یا به تحریک به تحریک که گفتن یه حرف دوم به تسکیم باید هر حرف دوم مرادشون از این تحریک و تسکیم حرف به وسطه چرا مثلا حال نگفتن گفتن تسکیم خب تسکیم کدوم چون اولی و ثقومی جای بحث تسکیم درشون نیست اولی که مت چند مبارزه داره که بله چون مردم لعنش میکنن خب اینو توخ خابیده دیگه دی زیاده انسان لعنه یک نفر لعنش کنه البته در کتاب ابن سیده لعنه رو هم به معنای مثلا تنزل عظیم و لعن معنای هم گرفته این معلوم نیست که اصلاح ثابت باشه این با با در بیاد اینو مثلا حال و محل کردن حال محل. چون وقتی مطرود شد مثلا مثلا ازاوی برشتاد میشه ایشون نه بوده در این کتاب در کتاب مسیده آمده این راجع به کلمه لحم پس بنابراین ما در اشتقاقاتی که در همشه دیگه از برای که کتب متعدد بشه و آشنا بشن با مسادر عربی از این سه کتاب خوندیم که هستن قدیمی هستن حدود ده در قبل هستن یا لازده در قبل و نحوه این که این به اصطلاح ریشیابی میکردن مطلب رو و این طور هم نبوده که فقط مجرد استعمال باشتن در توش محاضر استعمال هم داره که خب ریشیابیش خیلی مشکل بیست این راجع به کلمه لن اون چه که ما الان منحیص المجموع به دست میاریم توی لن همینطور که گفتن یک نوع معنای ترد یعنی که انما فرض این میشه که یک مبدع ثابتی هست تو اون مبدع هم خیره نه مطلقه اصلا این کسی را جهنم بیرون کردن درم نیست از بهش بیرون کردن درمه همطور که ایشون گفت ترد میدن خیل یک مبدع خیلی باشه از اون مبدع خیر اگر فرد ترد شد دور شد فاصله بین اون و بین مبدع خیر ایجاد شد ایجاد کرد اون رو به اصطلاح لعیم میگن یه استعمال هم داره ایشون نیورده نوشته چیزی هم که سنگ سار میکنن لعیم میگن رجیم. رجیم و به نظر میاد حساب مسئله سیدیه که تیم این هم درسته چون خود پنج کردن یک عینیت خارجی برای طرح کردیم ما ذکریمه توضیحاتی کردیم که اصولا اصل اولی این توبه الفاظ میاد جانشین یک معنی محسوس واقعی میشه مثلا اگه فرض می‌رفته بالای درخت یک سیبی رو میچیند میورده پایین پایی این سیب تو دستش بوده. کسی ماشین رو بیدار کرد وش نگرفت. این نگهداریشون گفتن میکی ملک رویه. یعنی تسلیت داریم. این بعد یواش وش توسعه پیدا میکنه. ممکن شما الان اینجا داشته یه خانه در نجف داری، کلاسش شما میذیم. یه خانه در خراسان داری، یه خانه از این پاکستان داری. تو دست شما نیست، اما ملک شماست این استقلال هم این توسعه پیدا میکنه. اون عینیت خارجی اینه خود سنگسار کردن اینو ترده سنگسار کردن این در حقیقت اون ترد خیلی و عینی است لعنه وقتی شما کسی رو از ده بیرون کردیم اینم یه نوع لعنه وقتی گفتین که خدا الله هم ملعن فلان اینم یه نوع لعنه اوناره که الله و لعنهم الله اینو میام همه یک نوع در حقیقت ترده حقیقت لعنه ترده از خیره تعریف خیلی زیبایی من نظر من انصافا تعریف تصالفا این ترده از خیر کلمه اندخیر در کتاب چیز نیدم ابن فارس هم نیدم در کتاب ابن سیده هم نیدم به نظر من این تعبیر سه دقیق تره مطلق ترد نیست ترده از خیر باشه این نقطه درش باشه و با در نظر گرفتن مجموعه استعمالات حدیثی اون نکتهی که برای ما روشن میشه اینه که کلمه لن اصولا در مقابل رحمه است اینو خوب در قصد مکنه؟ مثلا سب رو که ما معنا کردیم از کردیم، سب در مقابل دو چیزه سب یک مقابل نداره مثلا یک استاندارد داریم کلام آدی داریم یک ادب داریم مهده داریم کلام داریم یکی زیر آدی داریم که سوال کلامه جهره يه والله جهر بالقول سو. این نسوقه به قزاقدي صار همین دیروز عرض کردن میگه قزا بخور بالاش ازا می بفهمه اون قسمت پای مسن قزا لغو نمیشه درس زشتی به کار داره چرا این هست اما در مقابل در مسئله لع اونی که ما از مجموعه شواهد به دست میاریم رحمه، روایاتی که رحمه لائم را فعلی کسان این در مقابلش لعنه و یک نقطه ای در این جهت هست که معلوم میشه جمع مراتب رو حتی در محروحات لعن میگیره حالا یک کمی روی فکر بکنیم یعنی این لعنی که در این جامعیات یک نوترد و اعواد از اون رحمه است که مثلا کلمه رحیمه به کار برده شده در مقابلش این ابعاد آمده ترک کردن و چون میدونین لفظ رحمان و رحیم که از اصمان الاری هم هست حالا یا هر دوش مبالغه یا هردوش سفد مشفه یا یکیش مبادقه یکیش مشفه هست اختلاف در آینه، اینه و مفسکرین با قطع نظر از این اختلاف برید نیست در لغت عرب کلمه رحمان و رحیم و رحمت و کلماتی که از این قبیل آمده از معنای اشتراقی یعنی از معنای اصلی خودش که رحم باشه گرفته شده باشه بعدی نداره رحم خم معلومون وعایید که بچه در اون یک سید تاریخی باید بکنید تا بیاد به دنیا و رحم هم بریدی نیست حالا از ممکنه در ذهن نبوده اما میشه اینجور فهمید که انما اینطور به ذهن میان که موارد رحم و رحمت انسانی شبیه به همون رحم باشه به چه معنا؟ که انما اینطور تصویر میشه دنیا تمامی موجودات حالا آدم رسا قیبشان قبول بکنیم آدم رسا قیبشان قبول نکنیم حوالم قبلش حوالم بعدش حوالم بعد بعدیش الا یوم القیامه الا درجان این یک نظامی رو تصویر بکنیم یک نظام عمومی تکلیم که انما این نظام عمومی تکلیم که از اون مساله حفظیش و عالم شروع میشه تا مراسب عالی در حضات این که انما به منزله رحیم برای انسان منزله یک است که انسان اونه اگر انسان در این نظام چون این در آیات کتاب و در روایات تأکید شده یعنی که از اصول اصلیست که کل وجود داره یک نظام متخنی هم. و حیوان و موجود دیگه مثلا سنگ تو همون نظام خودشه آب تو نظام خودشه حیوان انسان میتونه از اون نظام خارج بشه میتونه خارج نشه اگر در همون نظام عام حرکت کرد این میگه بگن رحمه الله این رحمه حرکت کرد یعنی این نظام عام تکلیم نظام عام متکامل این اینجوریست اگر از اون نظام خارج شد به اون لحنه میگم ترد از اون نظام آن رو لحن میگم و این و این نقطه ای که من عرض کردم لازم نیست لحن حتما در محرمات باشه چون این نظام عالی خلق و نظام عالی تکلیل جوری شده این نظام همه مراتب تایی با با هم دیگه نه جوری این نظام وجود داره که حتی درجات کمال که اصطلاحا ما بهش استهباب میگیم ما هم توش هست این که مثلا استب و ملائن. ملائن یعنی حالا فرض انسان بخواد غذا احاجت بکنه شادشی نقصه محدودیت نداره تو بیابان باشه در قاسم مثلا اما وقتی اومد در زندگی شهری این یک نظام ایجاد میکنه در زندگی شهری شما در بیابان باشین در کوهستان زندگی کنین فرضون تو قار زندگی بکنی یه حساب خاص خودش رو در زندگی شهری یک نظامه شما اگر آمدی در میان راه اون کار انجام گرفت این ترده و انسان از جامعهش ترد شده از اون نظام خارج شده در این زندگی شهری یک جای معینی برای قضا خوردن یک جای معینی برای قضا خوردنه. هر چیزی با یک جای معینی برش میگذارن لذا لازم نیست توی لن حتما خابیده باشه مخالفت با حرام اونی که ما الان می من منهیج مجموعه از آیات و روایات و مجموعه شواهد اینطوری به دست میاری اینه که رحم الله من فعل کذا رحم الله من سمع رحم الله من مثلا اان بلد و الا برر این عبارات رحمه به این معنا یعنی اون نظام تام کامل متكامل وجود این طوره. و اگر انسان این کار رو انجام داد داخل همون رحم کناون داخل اون نظام قرار و اما اگر بنا شده از اون نظام خارج شد ولو به مقدار ضعیفی به همون مقدار ضعفی که داره ترد میشه از اون نظام در حقیقت چون اون نظام متقنه نمیتونیم نظام رو از بین دوره در حقیقت این ترد میشه یه شریم و لایگون داره که اگر یک نخودی وقتی در دیگ داره می‌جوشه وقتی اون جوش اول خود نخود از جیغ افتاد بیرون دیگه اون نخود پخته نمیشه در اصل تمامش چه تغییری می‌کنه اون نخودای که این آب جوش بالا پایین برن زیاد اونها پخته میشن این یک طرزی در این نظام طبیعت در این نظام کامل وجود وجود داره این طرز شامل موارد استحباب میشه شامل موارد کراهت میشه فهم نمی‌کنه طرز در روایات ما داره روایات ما خیلی زیاد نیست اما موارد احادیث سنت که پیغمبر اکرام در خن و ده چیز رو یا حالا بعد لفظ ده نداره م... بسا لعن میکنم یکیچم قارثه ها این لفظ قارثه ها در تمامونتون رو نیست سابقا توضیحش ده این قارثه ها از کردیم کسی که الان یک شاخه انگور رو تو زمین میکنه که بعد درخت بشه بعد انگور بده بعد این انگور رو بردار شراب کنه حتی درقیل استه سال آیا معنایی ای عبارت ای اینه که این شخص که الان داره میکاره از الان ملعونه یا به نحر شده متأخر چون ممکنه بعد توبه بکنه بعد اصلا بمیره باعتنه نرسه که این انگور رو تبدیل به شراب بکنه اگر این انگوری که از این شاخه درخ گرفته اگر اون انگور رو شراب کرد لهم داره ظاهی روازه که از این خلف این ده از هینه. این نکتهش الان با این تعبیر ما روشن شد چون نظام طبیعتی رو که خدا قرار داده رو این حسابه انگور نباید برای شراق کاشته بشه از همون لحظه ای که این شاخر رو تو زمین میکنه این از رحمت الهی ترد شده ترد منم خیر شده چرا؟ چون از تردین موجودات غیر از انسان اونا فکرشونیش مثلا گرب میخوره و میدره هم میکنه یا فرسون درخ سیر طبیعی خودش. این انسانه که فعلش با نیتش عوض میشه ممکنه فعل واحد باشه با نیت متعدد عوض میشه همین حدیث این اعمال به که در کتاب سعی بخاری همونی حدیث کتابه همینطوره که عمر گفت سعیس سر یقول این نمال اعمال به نیاد فمن کامت هجرت و الالله و رسوله فه هجرت و رسوله اما منکان از هجوه تو الى دن یعنی اطلابه ها و امره از نیوری دنکاه ها هجوه یعنی افرادی که امکه بود در یک عشیره دوردرسی مثلا 200 کیلومه 300 کیلومه با مدینه فاصله داره مسلمان شدن از بهشون مرد میشنه میان به داره اسلام پیغمه این آمدن این خود آمدن یکیه اما این آمدن با نیت عمد میشه یه دفعه واقعا میخواد بیاد دنیای اسلام در دارال اسلام زندگی کنه. یه دفعه شیده مسلمان تو مکه برزن ماهیشون خوب شده. قرآن گیریشون آمده جنگیدن پول گیریشون آمده. میخواد پول گیریشون بیاد. بخطب. از اون لحظه خروج از به اصطلاح که میاد از اون منطقه آزهی که نمیشه گفت از اون منطقه تا دارال اسلام خود این آمدن به حسب نیت شکل عرض میکنه. اون به و این مطلب یه تفکر اسلامی صحیحی بوده و مخصوصاً کسانی که اهل به اصطلاح خودشون باطن و جنبایی باطنی بوده روی این تاکید دارن یه شعر معروفی داره به ناصر خسرو انگور نه از بره نبی دست به چرخوش یعنی این انگور رو که می‌ریزن توی دستگاه چرخوش مثل دستگاه آب می‌گیریم ما آب و انگور رو می‌گیرن نذارن که این آب رو تبدیل به شراب بکنن انگور نه در اون سعی در رو شعرهای ناصر خوزب شما خود جد دو اسمایلی ها به ساخت باطنی شیعه خیلی سعی میکنه اون جنبه های باطنی و اون واقع رو دیدن و همیشه شعر بردیش داره که انگوش می آزار در کفتن کس تا کس نکند انگوش من انجام به در کفتن کس تا کس نکند رنجب در کفتن از مش یعنی اگر توی انگوش دویجو در خانه مردم زدی یکی دیگه مشت دویجو دو ر اون انعکاس عمل تو انگوش مکن رنجه به در کفتن کس تا کس مکن رنجه به در کفتن مشت اون انگوش دادن منعکس میشه مشت به در خود و این تعبیر انگور نه از بهره نبی درست بشه انگور رو که اگر شما آبشو رو میگیریم اینکه یا سرکه بشه یا آب انگور کرده بشه اما اگر شما اینو رو به خاطر شراب این کار به این, این همون نکته است. حسبا باوربین با این تقریبی که گفته شد و با مقابله ای که بین لعن و رحمت شد لعنت و رحمت شد و از کلمه در این کتاب آمده که لعنت معنای عذاب از اون ورا دارن که رحمت و به اصطلاح نعمت بهش مثلا رحمان اما فی رحمت, رحمت الله این بهش. این در حقیقت ملازمه این دو تا ملازمه این که انسان در نظام صحیح تقییم باشه اون دیدنش به بهشده و ملازمه این که در نظام بگ باشه همون عذابه اینه یعنی از نظام خارج بشه ترد بشه پس این خیر مراد همون نظام عالی تقییمه و لعنت در اصطلاح لعن الله من فعل که دار این همه در روایات لعن داری و لعن لعنت به این معنا به خدا هم نسبت داده شده این علایک علانهم الله به ذهن ما مراد اینه یعنی این نظام یک جوریه که هر کسی از این نظام خارج شد خود نظام هم او رو از شر میکنه این علانهم الله و هر انسانی هم که در نظام بود این یعنی این شخص چون منحرر شده چون از نظام خارج شده هم از اصل نظام مخدوم هم از کسانی گیره اون نظام سیر داره در نظام سیه تکوینی سیر و نظام به ذهن میاد که کلمه لن بگیر از مسئله یه سب باشه و لذا نسبت به خدا هم نسبت جزید هم انا همونلا در یه سب رو کسی به خدا نسبت نداده اگر هم مثلا سب با حالا همه قطعه نه مرنه که خدا تو خدا رو که تو باش نمیده غلطه کیف ما پس سناول این خوب دقت بکنید اگر این دوتا رو ما مقایسه کردیم اون روشن میشه که صد به این معنی کلن جایز نباشه اما لن تابع عمل باشه یعنی لن تابع این از که شخص چه کار رو انجام میده اگر عمل زشتی بود ما این مخیر میگیم این شخص ملعونه یعنی از اون نظام اساسی خلقت خارج شده از رحم خلقت اسمش میشه بزن تکیم خارج شده این شخص ملعونه و با این تغییر هم روشن شد دایی نداری ما محردی که قضای نقه تا آخر شخص نه ما میتونیم لن رو به حال به یک فعلش بگیم بگیم مثلا این کار کرد این ملعون این کار کرد درست اشتای نداری کما این که از این حساب هم معلوم شد که لن حتما دارمدار و حرمت نیست راسته این مطلب لن شامل مخروعات هم میشه چون در اون نظام تام قر از راجبات نیست کارهایی که کمال و حسنم هست اونا هست به هر شکلی که انسان از او خارج بشه، این به اصطلاح یک نوع لعن حساب میشه نکته دیگری که باز در اینجا روشن شد میتونیم بگیم لعن تقریباً،, تقریبا یک نوع بار حقوقی هم داره به خلاف سب سب یک بار مردی چون زیر خط استاندارد و اصطلاح ما زیر خط متعارده سب یک نوع احقلاز یک نوع تعدیه یک نوع ظلمه اما لن یک نوع جزای عمل انسانه یعنی کسی که آمد کارزش انجام داد به مقدار اون کارزش از نظام عالی تکلیم جدا شده و نظام در رباره اما توضیحش و ولیزاق این یک نوع جزاست منظره جزای حوز یکی از جزاهایی که بر هست این است که اون لعن میشه یعنی هر شده افراد دیگه هم حق دارن اون رو لعن بکنن دقت بکنید این. این حق میشه یه نوع جزایی است که به اونها داده میشه حتی گاهی در مسائل اجتماعی مثلا در بضیه شهدا مثلا یزید خیال میگه با این کارایی که انجام داده که خب کار تموم شد این زیارت عاشورا در حقیقت همین بود اگر اگه عناوان مسلمانان شیعیان و مسلمون ها در مقابل اون سلطه ظالم موضع رفی بگیرن این لعنه اینها بمونه در اون روا داره که امام صادق تمون نسبت به حضرت امام حسین کله با به عیادت داره در زیارت عاشورا داره کله برای اینکه این حالت به اونها خیال نرفته مثلا, مثلا برای سلطه کار مثلا تمام بکنن نه این باید بمونه در طول تاریخ این حالت به جای خودش بمونه که به عنوان جزای اون عمل زشت این باید همینجور ادامه پیدا کنه ادامه یوم خیام اون وقت فقط نکته‌ای رو در اینجا ما توضیح بدیم ما عرض کردیم جزای اعمال انسان دو جوره. به صورت احکام جزایی که ما اصطلاحاً میگیم دو جوره. یک جور تابعی واقعه مثل دیات، مثل زمان شما اگر شیشه که تیرشو کندین قصدن نداشتین باید بدین اون دیگه رو به بهتا زامن هستیم پولیشو باید پرداخت کنیم یه اده احکام هستن اینا تابع عنوان تمرد و اسیان نه تابع واقع کسی که مثلا مخالف قوانین اجتماعی میکنن چرا بگیر میزرد میشه باید جریم روشی این احکامی که تابع عنوان تمرد و اسیان در همه حال بار نمیشه. در حالاتی که صدور خیل حاکی از تمرد انسان باشه فرض که در همه مثالی که چند بار ارز کنم اگر کسی از شراب جد شد برموشه یک کسی پشترش یک چپتیز گفته بوده از شراب جد منذر می پوشن. این رو جریمه نمیکنن چرا؟ چون اقراف بوده الجا بوده رفع نقومتی ما این احکام جزایی که ناشی مترتب می بر عنوان تمرد، نه بر عنوان تمرد این در مثل حالات ششگانه ای که در حدیث رحم آمده بار نمیشه رفع الغلم هنه ناهم حتی از این اینجور احکام جزائی بر ناهم بار نمیشه ناهم تکلیف داره اما احکام جد در حال نوم مثلا مثلا مثل رفع یک جایی که حتی رفع شراب بیری یخیر دهنشون خور برش بار نمیشه هر با. برش جاری نمیشه اما اگر در حال نوم قضل افتاد ایک نفر کشته شد دیگه رو باز بده اون که مربوط به احکام واقعیست بار میشه اون که مربوط که به احکامی ایست که عنوان تمرده در حال نوم بار نمیشه یعنی که از معانی حدیث رفع. افتاد قدم همین رفع قدم همه نائم حتی یست به این معنا که احکام جزایی که مبنیست بر حالت بر عنوان تمرد اونها بار نمیشه حالا اینجا این سؤال شاد پیش بیاد که لعن از کدام قبیله چه موجود نشون میده لعن از قبیل دومه یعنی از احکامی است که بر عنوان تمرد باقی میشه یعنی اگر کسی مخالفت کرد نستجیرور ناغاهان شراب خور این ملعون نیست لفت میکنید یا جاهلانه یا نمیدونست یا فراموش کرد این ملعون نیست این حدیث رفت شامل این هم میشه در حقیقت لعن شاملگو نمیشه ولیذا این تابع این نیست که در واقع اون کار رو انجام داده یا نه تابع تمروه و اسیانه بله از این دهاز اگر کسی رو دیدیم که عمل حرامی رو انجام میده نمیتونیم افتادان لعن این اشکال وارده چون ممکنه این خبر نداشته باشه یعنی نمیدونه که این مایه شرابه شما میدونیم این لعنش این شخصی جایز نیست چون لعن ظاهرا از قبیل احکام جزائیست که بر تمرد بار میشه بر عنوان احسیان بار میشه نه بر عنوان واقع مثل دیه نی. این شخصی که تمرد میکنه و بر خلاف احکام الهی حیام میکنه این در حقیقت ترد شده از نظام اما اگر نمیدونسته نجس خورده نمیدونسته حرام خورده تبر نداشته دروسی بعضی از اساطیر رو میگذاره اما به عنوان اینکه مثلا همانشون که جهنم برای اون نیست، که حد برای اونید نیست، لعن هم تابع اونهاست. لعن هم تابع اون نیست. ولی زاد در این مسئله معروفی که الان اهل سنت مثلا میگن شما مثلا چرا افراد لعن میکنید مثلا فرد معینی خب این تابع بحث موضوعی یعنی به عبارتین اخرى این تابع این نکته الان مثلا در کتاب ابن حزم در جلد 11 در بحث حد منافق در بحث منافقی روایتی عبارتی داره که ولید بن جمعی روا اخبار است اصلا منو بیش یه خبر بوده فی ها ان ابا بکر و عمر و فلان و فلان عارضو قصر دل نبی در ليله العقبه اسم میبره که این هرچی اون اسمش تو 7 تا 9 تا است اسمش 12 نیست این در این کتاب اهل السنه زده آمده در کتاب هدای کبرا 9 تا عاملی در واقع 11 تا عاملی در ص حساب 614 عاملی علایین عدد این افرادی که در ليله العقد در تبوک در بازگشت از تبوک خواستند تلگرام برای سرور بکنن مختل ثبت شده به هر حال اولی و دومی و یکی از این اعاظم صحابه در اونها وجود دارند در حالی که خدا خب این در حقیقت خیلی جوابش داره این, این عبارتی که ابن حزم داره واضح کاملا واضحی که ایشون مخاطب بگه اخبار صحیحه دقت بکنید وجود داره که ابوبکر و عمر خواستن پیرانبره شروع کنه این اباظه از نهاد چاپ شده چاپ بعدی هم از این کتاب که لواب زنجیلی اونجا هم آوردن حذفش نکردن الان اونی که ما الان داریم یعنی کتابایی که چاپ شده یک دانه از این خبر هم وجود نداره ابن حزم معاصر شیخ طوسیه تا قرن پنجم بوده حالا اون اخبار کجاست خوب. ظاهر عبارتش وقتی وقتی جو اولین عبارتش خوندیم ظاهر عبارتش کاملا واضحه که روایات صحیحه وجود داشته خوبه از اون چی دیگه هل محلا جلد یازده اون چاکه که جلیه صفحه نظر دیگه چون یه به هم ما حق روزه فساقتون لنهو منطلیل ولی دبن جمعی و به حال کن حالا این عذمی که میگه بن طریقه ولیذنه و هو حال ک، معناش اینه که این روایت هیچ اشکالی نداره فقط ولیذنه جمعه بعد می فعل نهو رو با اخبار اخبارن چی ها این ولیذنه جمعه ان عوامره و عمر و فلان از ابو بعد می و هاذا هو کلم و سراح معلوم دروخه خب من خب به چواهد خودتون می دروخه سند معتبره حالا تعبیر به اخبار داره و هیچ نبوده بعدم اشکال در سند به ولیذنه جمعه کرده چهار تا های اهل سنت از این نرمی میکنن میدونی به خود مسلم استاد مسلم خود مسلم از اصده همه البته اطلاع از اهل سنت هم انصاب باید مثلا این مرد از خوبی نداشته چرا مسلم از هم؟ چرا همه به خود مسلم برگل این شخصی که ایشون میگه به حال کرد و اشکال سند رو میبره روی ولید ابن این خودش از مشایخ مسلمه و اما اما مسلم سه نفرگم از سه ازش نرم می کنم ازش نرم نکنم مطلع ازش نرم می کنم و معنای این عبارت را اگه بیه دستی یک کاملا واضحه که این آهادیث اخبار صحیح و نظام میگه و لا نعلم من و زحمام نمی دونیم که اینه برس کرده خب سند مشکل نداره سند روچند اما محقب هم که قبول نداری پر مروبک ما زن تروبا پیان ب ولا یذرا یا ولا نعلم ولا علم من نزع خب حالا میگم ها شما یقین داریم که این خبر مجذوره اگر کسی گفت نه و اخبار صحیح وارد شده ما قبول داره و بر که شما این کارو بکنه مربونه. این چه مشکلی داره وقتی خودتون ائمه شانتون این عبارتو دارن همون عبارت حدیث دوات و صحیفه رو که در مقابل پیغمبر ایستاد حالا چون وقت ما گذشته وارد شهرش میشه اگر کسی یعنی اختلاف ما با اونها در حقیقت اختلاف موضوعی میشه شما میگید من این اخبار قبول ندارم خیلید اشکال نکنه کسی لعن اونها رو کرد این دیگه کافره وقتی خود شما این نکته رو من از کدم چند بار دیگه بازم اینجا تکرار میکنم و واقعا اعتقاده من جزء معجزات ها این جزء کرامه هست ما شیعه با سندسن این مطلب نداریم خیلی <تص> هنچی در کتب ما با سند صحیل مطلب نداره اما ها با سند صحیل دارن این واقعا به نظرم جزا کرامات <تصفيق> اهل سنت با سند صحیل دارن اخبار هم دارن که باعث نه اینکه بانوان منافقی چون عنوان منافقی در سعی تحییم چیز داره که بعد از قصه منافقی مراد معلومه از دو مسلم بیمیگه واضح ما لیلتو لاخره هست منافقی اما با سنده سهی با عرف دارن که ما عراض و قفل نداریم. و ما نداریم ما الان در طرق شیعه یکی هدیعت و کبراد که مال به اصطلاح حسین نحمدان اسم نو نقرم برده و مرسرم هست از مفضل نحمدون یکی هم شسال محوم شیف صدو و یک شسال زریع شد بینظرم آخرش هم به سنت منتقید میشه اونجا چهارده هست داره جای دیگه نداریم مثل سیلی از اول و این دوازن نفره که میخواستن رسول های ترور بکنن داره. اما در کتب اهل سنت با تنده صحیح ادهی از اخبار داریم یعنی اینقدر این تنده صحیحه که نقطه زعفش استاد مسلمه زعف او را به ولید ابن جمعه که استاد مسلمه بگی این بقیه صحیحه چیه بزرش اون نقطه زدی که این دستش دست روش خودشته ولید ابن جمعه. البته الان اهل سنت کلی نهاد که هست کرد معسه یکی از دوستان راجع به عمر خیلی کتاب‌ها رو دیده بود ازش پرسیدم گفتان خیلی از معلا پیدا نکرد من اصلاً گفتم احتمال تو مخصوصات پیدا بشه فعلاً در مطبوعات کلاً وجود نداره تا قرم پنجم وجود داشته که ابن حز نام می‌بره دیگه بعد از اون کلن یعنی اینا به نظر من جز اجازات الهی که اهل سنت اخبار صحیحه در این جرد دارن و شیعه هم نداره اخبار صحیح خب این میشه به خود اونا ها گفت با... که شما این که به اینکه به ما ها اشکال بکنید به خودتون به علماء خودتون اشکال بکنید نه به ما خب وقتی علماءتون به طریقه صحیح نهر کردن که عراض و بخل ندید ممکن است در عالم وجود در نظام موسیقی کامل وجود کسی خبیستر از این باشه که اراده و بخل ندید مرحومتر و خبیستر از این باشه حالا شما میگید ما قهض داریم به بس ما میگیم چون افکار شماست اهلوه ما هم که نر نکردن خود شما ها نرکردین سردشن که سهی بوده ما میتونیم این را قبول بکنیم لاعقل در این حد هست که شما نگید اگه نگی چرا لعن کردین استحباها چیم کافر مشرکی استحباها فیسم هم ندارد نگه استحبا کفر کسی که لعن بکنه به حساب زوابز شرعی حتی به اون فاطب دارد حسابه کلام پر و ده الله.